که الله فقط مختصران بگه مختصران. اول تهارت بدن لباس به اتفاق فرض هست. رو به از ایستادن فرض هست. اگر سینی از قبل منحرف بشه نماز باطل میشه. اگر صر سر نماز سرعت و برگردان نگاه که ای مکروه تحریمی هست. بر به قبله وقتی می‌شی دستهار و تکلی تحریمی گفت دستهار بلند کردم. تا کجا بلند بشه سه روایت داری. وزنی از تقویشها. بایدان تا شانه ها و تا بالا گوش ها اومده جمع بین کل روایت این است که روی هر سی روایت عمل کنیم کف دست برابر شانه ها باشن که شست دست ها. تا نرمه گوش می دسن انگوش تا بالا گوش روی هر سی روایت عمل می شه این که اینجوری می کنید دست می روی سینه این نماز خانوم ها هست خانوم دست بالا نکنه که چون که ستر آورت پوشیده بشه و بخاطر ا و تا گوش آمدیم جنب این احادیث به این صورت هست بعد از این که تقویر تحریم گفت یعنی انداخته همه چیز پشت سر یعنی حرام شدن تمام چیزهایی حلال بودن صحبت کردن حرام میشه خوردن نوشیدن همه چیز حرام میشه مناجات با پروردگار شروع میشه دستهار میبندید کجا میبندید در این صورت امام ترمیزی رحمه الله دو قول ذکر کردیم زیر می قباله ناف اینها صحابه تابعین عمل کرده‌اند این قول امام ترمذی بر سینه امام ترمذی قول ذکر نکرد اون حدیثی که سینه هست در موعاملین اسماعیل هست که راویش ضعیف است حدیث صحیحی زیر ناف ما عناق نیز زیر ناف بسته بشن این حدیثش هم محل اشکاله اما این حدیث با طلقی امت مواجه است امت این حدیث را گرفتیم مجتهدین بر این حدیث عمل کردند احناف و حنابله و یه قول از مالک همین حدیث رو گرفتی است که ناف عمل میشه. و بعد هم قول حضرت علی بن نبی طالب نسنه و دوریدن تحت سر را و بعد از اون خاندنی قراءات قراءات فرد هست قراءات فرد هست باز قراءات خونده بیشه سور فاتح خوندن واجبه سور فاتح سنا می سبحان کلوم می خونه بعد هم سور فاتح خونده می شه بس سور فاتح سور دیگری زم از سوره فراموش کردی نماز سجده سه میخوام. بعد نیره بسید در هنگان دست بستن لبعدی که اینجوره میبندن حالا این که نبی کریم بیادو به صدا خود آرنج را بگیرن چیزی وانا دارین ساید آمده یعنی بازو این خود، این استخوان میگه ساید وقتی این ازود هست این ساید هست ساید دست اینه در این رواد در ابو آمده که کف دست روی پشت که بوده و ها رو صاف دست بوده اون حدیث همین قول را به اصطلاح تایید میتونه که دستا باید به همین صورت بسته بشه بعد از اون میره رکوع در رکوع رفتی مردها باید کامل خم بشن و رکوع کامل با های باز بگیرید انگشتا باید باز باشن با با و پاها رو کامل راست اینجور که نه کامل به پاها فشار بیارید و کمر راست کنید اینجا رگ هاتون هم باز میشن و تا پیر بیشید کمرش moat خم نمیشه بعضی پزشکان یهودی که خیلی کبریک که شخص 히브ری گفته که که برای همیشه به علاج او روی ورزش است مل خاطر و سلمانه یه وقتی اگر کسی همیشه زانوها رو خوب فشار بده تا کامل باز بشن کامل باز بشن و فشار بیاره بسر کمر و کمر رو هم راست بکنه تاق زنده هست به بیماری دیه کاملش خم نمیشه سالم سالم میمونه این داخل اسلام اومده کامل میگیری فشار بید خانوما که کامل خم نمیشن بعد میری به سجده نگام سجده کرده دستها باز دست و چسب، چسباندن با بغل جایز نید دستها باید باز باشن و خوب هم سجده کنیده و چسباندن پیشانی و بینی جز فرائزه اگر بلند کردی نماز نمیشه پاها هم از پشت زمین باشن اگر تا پایان سجده پاها بلند بودن نماز شما باطل میشه و بعد این در سجده باید انگشت ها رو ببندیم. انگشتها باید نه انگشته باید جمع بشن انگام سجده کردن بعد بلند میشی، میشه لیر جلسه میکنی دوار سجده بردی بعد برای بعدی بلند میشه